اگر واجب و حرام کافی است پس نماز اول وقت یا نماز شب و تقییبات نماز و اینارم ترک کنیم اشکالی ندارد چه باری داریم شما اگه مردی گناه نکن ایب نماز بخون اول وقت نخون میری بهش انشاءالله تأثیری ندارد تأثیری کلی نداره، تأثیری کلی تأثیری شما داره بله. من خود مادر شما اول وقت اول و بخونند این ابنادری خوبه من دو واجب نیست ولی به نه گناه می چون قاله بردم نماز عقب این تصدیق ولی نیست ولی توقوی خوبی اما واجب نیست بشه درسته که به تجربه آدم دیدم میبینه که مثلا کسانی که از این چیزا مراقبت نمی کنن مثل اول وقت و جماعتو نماز شب در عمل تو تقوا هم موفق نمیشن معلومه که تشویق بدید واجبات انجام بده و محرمات ترک کنی چیزه میریسه به اینجا تصمیم داشته باشه مرتب انجام بده برد مرتب این حتی این اول وقتش هم درست میشه بله دیگه